بسم الله الرحمن الرحیم فعل الامری در کتاب بحث کتاب تصریف زنجانی هستیم فعل امرش امر به لام رو توضیح داد الان رسیدیم اما الامر به سیغه امر به سیغه یا همون به لفظ نبا لام و هو امر الحاضر که همان امر حاضر هست این چطوری درست میشه فهو جارن على لفظ المضارع المجزون این جاری هست، درست میشه بنابر لفظ مزارع مجبورم، من دی لم یانصور لم تنصور لم تنصورا لم تنصورو لم تنصوری لم تنصورا لم تنصور نه. چون فعل امر هست، امر حاضر، امر حاضر از مزارع حاضر درست میشه ششیگش. امر قائب که همون امر بلام بودون خوندیم. میگه جاری هست بر یا درست میشه از لفظ مزارع مجزوم، فان انکان ما بعد حرف المبارعتی متحرکند اگر حرف بعد از حرف مزارع حرکت داشت میخواد بگه که ما در امر حاضر حرف مزارع رو حذف میکنیم مثلا در تو ده رجو ده رجا ده تو ده رجو, ده رجو, ده رجو, ده رجو, ده رجو در تدحرجو تارو حس میکنین میگه ف انکان ما بعد حرف المضارعه متحرکن اگر بعد از حرف مضارعه که حذف میشه در امر حرکت داشت فتسقط منه حرف المضارعه میگه حرف مضارعه رو حذف میکنی و تاتی بصوره الباق مجزما باقی ماندهش رو به شکل مجزوم میاری تدحرجو شکل مجزومش جس تدحرج میگه تارو بایم داری و باقی ماندشو همان ترک مجزوم هست میاری تو دحرجو مش دحرج تو دحرجو دحرج و تأتي بصورة الباقی مجزوما و صورة باقی مجزوم میاری درسته فتقولو في امر الحاضر من تو در امر حاضر تو دحرجو میگویی، تدحرجوا مِغوي دحرج دحرجو دحرجي دحريجي دحرجنا يا مثلا تفرحوا مِغوي وهكذا تقول فرح فرحا فرحوا فرحي فرحا فرح فرح فرح فرح فرحنا قاتل يقاتل تقاتل مش قاتل تكسر يتكسروا تتكسروا امره المضارع حاضرش تتكسروا امرش مشي تتكسر تباعدو امرش میشه تباعد تتدهرجو امرش میشه تدهرج پس این به این سادگی بود یعنی شما موقعی که امر رو درست کنید اگر بعد از علامت مزاره حرکت داشت مانند تو دحرجو دال فتحه داره بعد از تا اینجا فقط تا رو برمیداری آخرش رو مجزون میکنی دهرج دهرجا دهرجو اما اگر ساکن بود خودش میگه و امکاناً ما بعد حرف المضارعه ساکنا اگر ما بعد حرف مضارع حرف مضارعمون تا هست در امر حاضر در مضارع حاضر اگر ما بعد حرف مضارع ساکن بود فتحذف منه حرف المضارعه حرف مضارعه رو حذف میکنی مانند تن سرو در تن سرو تارک برداریم نون ساکن هست تن صرو اینو چکار میکنی میگه فتحذف حذف میکنی خاننده رو مخاطب قرار دادی. حصف میکنی از آن حرف مزاره رو و تعتی به صورت الباقی مجزومن باقی مانده شو به شکل مجزوم میاری تن سرو تن خب تارک که برداریم آخرش مجزوم خانده نمیشه چون نون ساکن داره تن سرو تارو برداشتیم خانده نمیشه میگه مزیدن فی اولی همزتو وصل مکسوره اضافه میکنی در اولش همزه وصل کسرداری رو مانند تفمعو ترکو برداریم سین ساکنه پس یک همزه میاریم همزه کسرداری میشه اسمع آخرش مجزوم پس میگه چیکار چی میکنید مزیدن فی اولی همزه وصل مکسوره همزه وصل کسرداری رو در اولش اضافه میکنیم اگر فعل مزاریک ازش رو درست میکنیم بعد از حرف مزار ساکن داشت مثل تن سرو صرف فعلای سالم سه مجرد فلای سالمش همشون این حالات رو دارن همشون این حالت رو دارن یا بر وزن یعنی عین الفعلشون فاعل فعلشون ساکن داره بعد از علامت مزار فعول فل هست، ساکن داره. ال ان یک کوون عین مدار ع ای من هم مگر زمانی که ا0 فعل مزاره ضمه داشته باشه. فتاب موها پس همزه رو ضمه می دهی. مانند تن سر تن سرو که علامت مزاره هست در تن سررو نون فعال فعل هست، صاد عین هست را لام الفعل هست چون نثره رو زیر فعلک بنویسیم اونی که زیر فاست بش میگن فاعل فعل اونی که زیر ان هست بش میگن عین اونی که زیر لام هست بش میگن عین حالا در تنصرو ترک برداریم نون و صاد و را میمونن نصر رو که زیر فعلا بنویسیم صاد عین هست ها میگه زمانی که عین الفعل داشت در مزارع تنصرو حمزه رو که در امر میاری حمزه رو زمه بده. پس امر زمه چی میشه؟ امر تنصور میشه اون سر اون سر این یا کسره داره یا زمه داره یا فته از این سه حالت خارج نیست اگر این الفل کسره داشت همزه رو کسره بده مانند تزربو امرش میشه از رب اگر این الفل داشت باز هم همزه رو کسره بده مانند تس معو اسمع اما اگر این الفیل زمه داشت همزه رو زمه بده ماننده تق تو لو اق طول امرش میشه پس این بود توضیح آنچه که تا اینجا گفت خب امر از دو حالت خارج نیست بعد از اینکه علامت مزاره رو حرکت حذف کنید یا حرکت دار یا ندار اگر حرکت داشت نیاز به همزه وصل نیست ماننده مثلا تو کر رو که برداریم که فتح داره بس اینجا نیاز به همزه واس نیست آخرش فقط مجزون میکنیم میشه کرم. ولی جاهایی که همزه واس بعد از این کلامت مزاره رو حذف کردیم فالفل ساکن داشت فالفل حالا فالفل نیست همه جا اگر بگیم فالفل قاعده کامل نیست حرفی که بعد از علامت مزاره بود اگر ساکن داشت اینجوری بگیم اگر بگیم فالفل اگر حرفی که بعد از علامت مزاره بود ساکن بود اون موقع همزه وصل میاوریم و همزه وصل و حرکتش رو از اینو الفل مشخص میکنیم که توضیح دادیم فتقول انصر انصر انصرو و انصری انصر نه و کذالک اضرب و علم همچنین اضرب و علم اج اجتمع استخرج و فتحو همزه که اکرم البته تنها بابی که همزش فتحه داره باب افعاله افعلا یفعل و افعل افعال اکرم یکرم و اکرم اکرم امرشون میدونیم که فتحه داره چرا؟ چون این همزهی که در باب افعال هست این همزه وصل نیست این همزه اصلی هست در اصل بوده اکرمه ما قبلا خوندیم مزاره از ماضی درست میشه یک یار میاریم که مزاره درست میشه اکرما در اثبات بگیم یو اکرمو ولی این حمزه رو حصف میکنیم به سبق بودن میشه یو کرمو در امر همین حمزه برمیگرده پس بناعن الى اصل المرفوض بنابر اصل متروکه فإن اصل التكرم تو أكرمو میگه اصل توکرمو تو اکرمو بوده خب تو اکرمو ترک که میشه اکرمو که آخرشون مجزوم میکنن میشه اکرم پس این حمزه داستانش کاملا متفاوت هست به خاطر این هست که همزه باب افعال فته داره لذا بحث امروز یعنی امر حاضر بسیار ساده بود اونایی که بعد از علامت مزاره حرکت دارن نیازی به همزه وصل ندارن در امر حاضر و اونایی که همزه وصل رو میاریم همزه وصل کسره میگیره مگر زمان که اینول فیل زمه داشته باشه که زمه میگیره اون موقع همزه وصل امر مگر در باب افعال که فتحه داره آخرش هم بحث نحوی هست نگفته در مجزومات ما قبلا گفته ایم اگر فعل صحیحول آخر باشه آخرش یا با سکون ازظوم میشه یا با حس نون مانند اونصر که آخرش ساکن داره اونصررا که مبنی هست بر علامت بر حس نون. ولی اگر همین فیلم مطل آخر می بود ناقص می بود اون موقع در اون سیغههایی که نون نداشتند البته به جمع مع است که نوونش درستان جداست نون رو بر می داریمونای کنون دارن ولی که کنون ندارن حرف ایل رو هست می مثلا در ترمی امرش میشه ارمی یا هست میشه سیغه بعدی میشه ارمیا نون هست میشه سیغه بعدی میشه ارمو نون هست میشه سیغه بعدی میشه ارمی ارمیا ارمینا نون جمع مال اصلی هست و نون جمع مال زمیر هست و هست نمی پس مجموعه آنچه که نیاز بود رو گفتیم موفق و پیروز باشید